فصلی یازدهم ادامه یادداشت های روز نهم اوت برای گزارش هدف سرقت آزوقه همراه آقای تاناکا که مسئول آن روز بود به دفتر شرکت رفتیم طرف ما ارتش بود پس وضعیت چندان ساده نبود هرچند بر اثر بی توجهی آقای تاناکا پیش آمد اما به هر حال من هم مسئول بودم. حتی شاید این مشکل دامن سروان سررشدداری نائورا را هم می گرفت. کالاهای برده شده، هفت گونی برنج سفید، ده جعب کانسر گوشت گاو و پنج جعبه نوشیدنی انگور سفید کشو مخصوص بانگاه سادو بود. در زمان کمبود مواد غذایی بیقانونی به آن حد رسیده بود که سربازان عملیاتی با استفاده از کامیون ارتش و با دوز و کلک انبار شده را برده بودند. دو سرباز بر هر کامیون سوار بودند و روی کاپوت کامیون جلوی پرچم کوچک سبز کمرنگی افراشته بود هنگام بار کردن کنسرف های گوشت گاو ارشد آنها که سنش بیشتر از بقیه به نظر می رسید گفته بود وقت خوردن این کنسروها باید آنها را با بادمجان جوشاند و بعد خورد اگر این کار را بکنی دیگر پوست جوش نمیزند کنسروهای گوشت برای مقاومت در جبهه زمینی مناطق سوخته شده انبار میشد. شاید آن سرباز قبلا خوردن کنسروها را تجربه کرده بود. وقتی آقای تاناکا وقایع را به آقای فوجیتا رئیس کارخانه گزارش کرد، رئیس کارخانه عصبانی شد و لبهایش لرزید. اینکه نظامی با درجه افسری آمده است، یعنی نظامی‌ها تا این حد فاسد اند. آقای تاناکا با چهرهی پرید رنگ واقعا به حالت خبردار مقابل رئیس ایستاده بود. این کارمند بخش امور بیرونی شرکت چهل و هشت ساله و متولد شهر کابه بود. در خوابگاه شرکت اقامت داشت. همسرش در کارگاه غالبسازی کار می کرد. دو تا پسرشان در جنگ کشته شده و هر دو با هم دفن شده بودند. قبر بزرگی برایشان ساختند که نام هر دو بر آن حک شد. اکنون برای آیندگان سوال و جواب بین رئیس و آقای تاناکا را همان گونه که بود می نویسم. آقای تاناکا بدون حس و حال به شکلی خسته و بیرمغ حرف میزد. ولی واقعا آقای رئیس، به جز آنکه سنش بیشتر از همه بود سه نفر دیگر سربازانی بودند که پالتوی نظامیشان را درآورده پاتابه پیچیده و کفش های زهوار در رفته پوشیده بودند. ظاهرا پرچم کوچک سبز کمرنگی داشتند درست است؟ اگر پرچم سبز کمرنگ باشد، صاحب منصب نظامی دون پایه سوار بوده است. اگر پرچم قرمز باشد، صاحب منصب نظامی متوسط و اگر پرچم زرد باشد، صاحب منصب نظامی ارشد سوار بوده. پسران خودت هم کشته شدهاند و به نظر نمی رسد این امور نظامی را ندانی. درست است. سرباز ارشدی که سنش بیش از بقیه بود پیاده بود. واقعا به نظر می رسید از واحد نظامی شماره دوی غربی باشد پرچم سبز کمرنگ بود پس فکر کنم به دستور صاحب منصب نظامی دون پایه آمده بودند. تقصیر من بود آقای رئیس. اشتباه کردم. متوجه شدم آقای تاناکا سرش را پایین انداخته بود. شانههایش میلرزید و حق هقه می گریزد. به هر حال باید به واحد نظامی شماره دوی غربی خبر داد. آقای تاناکا، آقای شیزوما و من سه نفری امضا می کنیم. عجل کنید. رئیس به من گفت که رو نوشتی کنم. حتما، فکر کنم باید به شکل گزارش رسمی باشد. اما پادگان واحد نظامی شماره دو غربی در بمباران هوایی از بین رفته بود. نوشته را کجا باید می بردیم؟ دفتر حسابرسی گروهان مخابرات به طبقه دوم ساختمان اداری شرکت ما نقل مکان کرده بود. شاید بهتر بود که رونوشت برای دفتر حسابرسی واحد نظامی شماره دوی غربی را به دفتر حسابرسی گروهان مخابرات تقدیم کنیم ما به درستی ساختار داخلی واحدهای نظامی را نمیفهمیدیم. به هر حال مانند گزارش های رسمی نوشته ای تهیه کردم رئیس کارخانه و من مهر زدیم و آقای تاناکا هم از اثر انگشت شستش را پای نوشته زد این نوشته را به اتاقی شش تا تامی بردم که دفتر حسابرسی گروهان مخابرات شده بود در اتاقی به سبک ژاپنی میز و صندلی گذاشته و چکمه هایشان را نزدیک شوجی روی روزنامه‌ای درآورده بودند. من هم کفشم را درآوردم و وارد شدم. فرمانده آنها، سروان نورا، برای انجام وظیفه عازم جایی شده بود. دو افسر با درجه‌ای پایینتر آنجا بودند. پالتوهایشان را درآورده بودند. پس نمی‌توانستم درجه آنها را بفهمم. افسری که سبیل کم‌پشتی داشت و به نظر می‌رسید ارشدتر باشد، پاکت حاوی گزارش را از من گرفت. وقتی گفتم با سروان او را آشنایی دارم، آن نظامی گفت خسته نباشید و به خواندن نوشتهای داخل پاکت پرداخت. بعد با گفتن این مشکل ساز است این خوب نیست به سمت من برگشت. این نوشته باید به سطفان دوم ککبون در دفتر حسابرسی واحد نظامی شماره دوی غربی داده شود. اینجا دفتر حسابرسی گروهان و مخابرات هست. بنابراین میخواهم آن را به سطفان دوم ککبون برسانید. ما نمیدانیم واحد نظامی شماره دو غربی الان کجا مستقر شده است این جمله مخاطبم را به هم ریخت حرف‌های احمقانه نزن اگر این نوشته از این واحد به ساطوان دوم کوکبون برسد مانند این است که ما اشتباه بزرگ ساطوان دوم کوکوبون را افشا کنیم این کار همچنین بر عملکرد تمام اعضای دفتر حسابرسی واحد نظامی شماره دو غربی تأثیر منفی می‌گذارد به هیچ عنوان ما این کار را قبول نمی‌کنیم امیدی به تحویل گرفتن گزارش نبود به طبقه پایین برگشتم و به رئیس کارخانه گزارش دادم آقای تاناکا دیگر آنجا نبود با توجه به حرفهای رئیس کارخانه ظاهرا آقای تاناکا گفته بود که تمام عمرش را کار خواهد کرد تا آنچه را که از ارتش دزدیده شده جبران کند به خانه اجاره ای برگشتم خیلی خسته بودم هنوز شیگکو و یاسکو از ساحل رودخانه بر نگشته بودند پس تصمیم گرفتم تا شب بخوابم برای محافظت از مگس‌ها بند را سر پا کردم و خوابیدم. کمی که خوابیدم صدای جغدی را شنیدم و چشمانم را باز کردم. نور خورشید مغرب بر دیوار انبار تابیده بود. می توانستم راه رفتن همسر صاحبخانه را هم ببینم. جغد نخوانده بود. فهمیدم پایم درد گرفته و چشم گشودم. نمی توانستم بفهمم وسط تابستان و در حالی که هنوز خورشید غروب نکرده چرا پایم یخ کرده؟ وقتی انگشتان پایم را لمس کردم، شست پای چپاراستم درد می کرد. با این فکرها بلند شدم. وقتی گوشه پشه بند را بلند کردم و بیرون آمدم، در گونه سمت چپم چیزی مثل سرما احساس کردم. با دست که لمسش کردم، متوجه شدم پارچه روی گونه چپم نیست. به پشه بند چسبیده بود. وقتی به آینه نگاه کردم فهمیدم قسمت چرکی کنار بینی هم سر باز کرده و سفت و خشک شده. خیلی مشمعز کننده بود. حوله را به آب خیس کردم. قسمت آسیب دیده را آرام پاک کردم. پانسمانش را عوض کردم و با نوار چسب چسباندم. وقتی پانسمان را تمام کردم و پش بند را تا زدم، شیگکو و یاسوکوا برگشتند. به اندازه سه نفر غذا از آشپزخانه گرفته بودند. آنچه روی میز غذاخوری امانتی گذاشتند، تسکودانی سیب زمینی، ترشی سبزیجات و بلقور سبوسدار بود. در حالی که داشتیم این غذا را می‌خوردیم، شیگکو و یاسکو با توجه به حرفهایی که در ساحل رودخانه شنیده بودند، درباره وضعیت هیروشیما صحبت کردند. لباس کار، پیراهن و شلوار را شسته و در ساحل پهن کرده بودند. زمانی که منتظر خشک شدن آنها بودند این صحبتها را از سزنی شنیده بودند که آنها هم به همان صورت منتظر بودند این صحبتها به قرار زیر بود در حیات مدرسه راهنمایی استانی شماره یک هیروشیما استخری وجود داشت که آب آن در اطفای حریق استفاده میشد در اطراف این استخر صدها نفر از دانش آموزان و اعضای گروه خدمات مرده بودند چون لباس آنها سوخته و پاره شده بود به حالت نیمه اوریان روی هم افتاده و دور استخر چیده شده بودند بنابراین وقتی از دور نگاه میکردی مانند باخچه گلهای لاله بود وقتی از نزدیک نگاه میکردی عین این داوودی بر هم خرمن شده بودند در خطوط قطار برقی مقابل ایزت کده داخل لاشه فلزی قطار برقی نیم نیمسوز راننده وجود داشت که سر پا فرمان را گرفته بود 4 نفر از مسافران هم در محل پیاده شدن نیم سوز شده بودند. صبح روز ششم ماه اوت در پادگان غربی یک گروه از افسران تحت آموزش، تعلیمات فرماندهی نظامی را دریافت کردند. بعد از اتمام آموزش، وقتی همه به خاطر ورزش بالاپوش خود را درآوردند، نور شدید جهید. در آن لحظه یک نفر در ته صف پشت خود را به تنه درختی در قسمتی که انبوه درختان رویده بود چسباند و سرپایستاد این افسر تحت آموزش وضعیت لحظه وزیدن موج انفجار را بر قلعه هیراشیما دیده بود برج قلعه ناگهان به سمت جنوب غربی به پرواز در آمده و به همان حالت پایین آمده بود لحظه‌ای بعد بینایی آن افسر از کار افتاده بود برج پنج طبقه از جای سابقش چهل 50 متر به سمت جنوب شرقی پرواز کرد اتفاقی که فقط او به چشم دیده بود حرف کسانی که بعدن محل را دیدند این بود که برج در کرانه رودخانه پشتی خورد شد و تکه های گل آن رنگ باختند. به نظر میرسید فشار موج ناشی از انفجار عمل و اکسل عمل داشته است وزن برج احتمالاً چند هزار تن بوده که با فشاری بیش از نیروی جاذبه حرکت داده شده و به آن صورت در آسمان به پرواز در بعد از افتادن پیکادان در شهر هیروشیما، از روستاها و شهرهای مناطق و های مختلف خیلی زود گروههای امداد و نجات اعزام شدند. گروه اعزامی از شهرک میوشی در بخش فوتامی هم یکی از این گروهها بود. کمک به دختران دبیرستانی میوشی که برای خدمت اجباری به هیروشیما آورده شده بودند و نیز سایر کارکنان وظیفه متولد میوشی هدف آنها بود. یک دسته از دانش آموزان دختر کلاس سوم به بالای دبیرستان میوشی به عنوان دستیار پرستار در بیمارستان نیروی زمینی و یک اده هم برای کمک به کارکنان ساخت هواپیما در کارگاه هوایی شماره یازده در شهر کوره به هیروشیما اعزام شده بودند. گروه صد نفری امداد و نجات شهرک میوشی صبح زود روز هفتم به هیروشیما وارد شدند. اما در محاصره آتش قرار گرفتند. اکثرشان سوختند و مردند. شخصی به اسم تابوچی جیتسو او که رئیس دسته شماره یک گروه و از دبیران دروس تخصصی همان دبیرستان بود به شهرک گیان در بیرون شهر فرار کرد و آنجا بیهوش شد. همه دانش آموزان دبیرستان دخترانه میوشی هم در دم کشته شده بودند. یادداشت اضافه شده من بعد از جنگ بر حسب اتفاق با آقای تابوچی آشنا شدم. حرفهای آقای تابوچی. صبح روز ششم ماه اوت سال 28 شوا قبل از رفتن به سر کار وقتی روزنامه را نگاه می کردم احساس کردم جرقی در آسمان جهید. فکر کردم وهم خیاد بیش نیست اما در ساعت دوازده که به گزارش ارتش از رادیو گوش کردم فهمیدم هیروشیما بمباران شده. ساعت سه بعد از ظهر که شد، زخمی هایی که از هیروشیما فرار کرده بودند با قطار به شهرک میاشی منتقل شدند. آن روز خطوط گبی در محل رودخانه شیما فوکاوا غیر قابل عبور شده بود. زخمی‌ها تا رودخانه شیما فوکاوا پیاده فرار کرده و در آنجا سوار قطار شده بودند. مقابل ایستگاه میاشی، انجمن پزشکی منطقه فاتامی و آتشنشانی شهرک میاشی، چادرهای برپا کرده و معالجات فوری زخمی ها را آغاز کرده بودند. حدود ساعت پنج بعد از ظهر، در گرد همایی کارکنان انجمن پزشکی منطقه، مدرسه راهنمایی میوشی، دبیرستان دخترانه میوشی، آتش نشانی و سایر داوطلبان شهر و روستا قرار برین شد تا گروه امداد و نجاتی به هیروشیما اعظام شود. من به عنوان رئیس دسته اول انتخاب شدم که در آن حدود هشتاد نفر از دبیران دبیرستان و داوطلبان ثبت نام شدند سوار قطار ساعت پنج صبح روز هفتم شده و حوالی رودخانه فوکاوا پیاده شدیم از آنجا پیاده به هیروشیما رفتیم حدود ساعت دهانیم صبح بود با تعجب وضعیت نامعمول هیروشیما هیراشیما نگاه میکردم اما نمیفهمیدم چه نوع بمبی آن انداخته شده است به هر حال چارهای نبود جز آنکه وضعیت را همانطور که بود بپذیریم از حوالی ایستگاه هیروشیما پیاده، شهرک های ایناری، کامیا، اوته و سندارا گشتیم. از حرارت باقی مانده از آتش بوی جنازه ها و نعره افراد نزدیک به مرگ می گاریختیم. آب غمغمه تمام شد و برای محافظت از خود از بقایای سوختهها ها فرار می کردیم. حدود دو ساعت اینجا و آنجا رفتیم تا متوجه شدم فقط دو نفر از گروه باقی مانده. نتوانستیم یک نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان را هم پیدا کنیم. یکی از این دو نفر هم نیمه بیهوش شده و تلو تلو خوران راه می رفت. حدود ساعت چهار و نیمه بعد از ظهر به خانه یکی از آشنایان در شهرک گیان در بیرون شهر رفتیم. آنجا حدود چهار ساعت استراحت کردیم. حدود ساعت هشت و نیم شب با اینکه خیلی خسته بودیم بلند شدیم و سه نفری برگشتیم. به قدری خسته بودم که نمیتوانستم را تا حالا بر ما گذشته بود به یاد آورم از شهرک گیون تا رودخانه شیمافوکاوا را سه ساعت پیمودیم شب در سالن انتظار ایستگاه شیمافوکاوا ماندیم ساعت شش صبح سوار قطار مملو از آوارگان شدیم و برگشتیم بعدن فهمیدم که تمام دانش آموزان دبیرستان دخترانه که برای خدمت اجباری به هیروشیما رفته بودند مردند نوید درصد متولدین میوشی هم که در بمباران بودند در دم جان باختند و بقیه هم سال بعد مردند. آقای تابوچی حدود دو ساعت در آوار سوخته سرگردان قدم زد. او در حال حاضر جزء بیماران اتمی محسوب می شود. شهرک میوشی با کوه از هیروشیما جدا شده است. پس ابر عروس دریایی هیروشیما از آنجا دیده نشده. شهر میهارا در فاصله 120 کیلومتری هیروشیما قرار دارد اما چون کوههای غرب آن کم ارتفاع هستند ظاهرا توانستند از آنجا ابر را ببینند یادداشت شده در روزهای بعد همه پلهای چوبی شهر هیروشیما در بمباران به طور کامل سوختند نحوه سوختنشان عجیب بود اول تختههای روی آنها دود کردند و سوختند بعد آتش به پایه‌های پل منتقل شد. هنگام جزر، قسمت‌هایی از پایه‌ی پل که همراه با پایین رفتن آب بیرون آمدند، به ترتیب دود کردند و سوختند. با اینکه باید بعد از مد و بالا آمدن موجها، آتش خاموش می‌شد، اما روز بعد باز هم آنها دود کردند و سوختند. در قبرستان معبد کوکوتاای واقع در خود هیروشیما، قبرهایی هستند که بین سکوی سنگی و سنگ اصلی آنها در فاصلهی ده سانتیمتری تکه آجرهایی قرار گرفته. سنگ اصلی مقبره قطری در حدود یک متر و بیست سانتیمتر و شکلی استوانه‌ای دارد. در لحظه بر اثر فشار موج انفجار، ها بالا آمده و آجرهایی در حال پرتاب وارد فاصلهی بین آنها شدند. قسمتهایی از قبرهای گرانیتی سیغل خورده که نور به آن برخورد کرد، سوختند و ناصاف و زبر شدند. قسمت‌هایی هم که نور به آن برخورد نکرد به همان شکل سابق صاف باقی ماندند. حتی سنگ‌های گرانیتی هم در چنان موقعیتی سوختند. های سقف هم که نور به آنها برخورد کرد به رنگ قهوه‌ای سوختند اما تغییر نکردند. فقط بر سطح آنها حباب های ریزی مانند کف بالا آمد. یکی از سربازان گروهان مهندسی در حین حرکت به سوی پناهگاهی موقتی در حساکا، از خانه کشاورزی در روستای اوگا تقاضای آب کرد. گروهان مهندسی وقت پیکادون مرده زیادی داده بود. بنابراین در آبرفت رودی که از هاکوشیما جاری بود، جنازه ها را به شکل مربع روی هم انباشتند تا آتش بزنند. وقتی هم شب شد، نگهبانانی آنجا ماندند و مراقب بودند. به این نگهبانان، نگهبان اجساد می گفتند که وظیفهشان بسیار سخت بود، به نظر می رسد از وقتی پیکادان افتاد، به یک بار سازمان فرمان در ارتش دچار هرج و مرد شد. قوانین نظامی بیمعنی شده و ترس از سربازان میان افسران دیده شده بود. مطالب بالا شنیده هایی بوده که یاسوکو تعریف کرد. آب زیادی وارد دهان شیگه کشده بود. می گفت دردی مثل سوزش زیر شکمش دارد و کمتر حرف می زد. تا خشک شدن شلوارشان در ساحل هر دو نفر حال به کمر پیچیدند و در آبهای کم عمق نشستند. وقتی روز کاملا غروب کرد، صاحبخانه بازنشسته برای یاد دادن نحوه روشن کردن لامپ‌ها آمد. به نظر می‌رسد از امشب دوباره جریان برق برقرار خواهد شد. روز دهم ماه اوت، هوای و یاسوکو صبحانه را از آشپزخانه خوابگاه گرفتند و آوردند. برای نهارشان از بلغورهای سبوزدار نیگری درست کردند و عزم هیروشیما شدند. آنها را تا ایستگاه بدرقه کردند. محلی برای کنترل بلیط و نیز کسی برای راهنمایی و فروش بلیط وجود نداشت. افراد زیادی در سالن انتظار ازدهام کرده بودند. کسانی هم بودند که وقتی قطار آمد برخاستند و قطار که حرکت کرد بر نیمکت های انتظار دراز کشیدند. کسانی هم راه جستجوی بچه های گم شده را از کارمندان ایستگاه می پرسیدند. از ایستگاه برگشتم و وقتی به شرکت رفتم کار لازم اجرا و استراری تدارک زغال سنگ منتظرم بود. مجبور بودم به هیروشیما یا اوجینا بروم. آقای فوجیتا رئیس کارخانه بسته بزرگی از اتاق دیگرا. میدانم خسته هستید، اما در صورت امکان بهتر است هر هرچه زودتر این کار را انجام دهید. آنچه را در آن آوار سوخته لازم است داخل این بسته گذاشتم. امکان دارد دوباره بمباران شود، پس به اندازه کافیه احتیاط کنید. از رئیس کارخانه تقاضا کردم به شیگه کوه دهد. جعبه کمک های اولیه را در پارچه زده حملات هوایی گذاشتم. با پوشیدن تابی و بستن بسته به پشتم، آزم شدم کامیون های ارتشی مرا تا ایستگاه یاما مطار سندند. از اینجا به بعد هنوز برای تردد ماشین پاکسازی نشده بود فقط پنجاه تا شست مسافر در ایستگاه بودند یک نفر هم از ایستگاه خارج نمی شد. همگی در یک صف در امتداد خطوط راه آهن به سمت هیروشیما حرکت می کردند گفتم همراه سفر هم سفر برای هیروشیما اما یک نفر هم جواب نداد و با رد شدن از روی تراورس های چوبی به راه خود ادامه دادند. به جز من، کسانی که باری دوش داشتند، دو زن بودند که خیلی جلوتر از من راه می رفتند و شلوار کار به پا داشتند. کسانی که بستهی مانند بسته نهار داشتند، یک چهارم جمعیت هم نمی شدند. روستاییان هومه با صداقت می گفتند که از لحاظ جنس و کالا در مزیقه شدید هستند. ترانوا هر روز چند بار چنین افراد خاموشی را به آوار سوخته هیراشیما می برد سرانجام با وارد شدن به مناطق سوخته بادی شدید همراه رطوبت و بوی ناخوشایند وزید از صفح افراد یکی کم شد دوتا کم شد و سرانجام چند نفر باقی ماندند که در مسیر من حرکت می کردند از آن حدود به بعد سفال های همه جا پخش و پلا و راه بسیار ناهموار بود بله، پلی که مدتی قبل از آن گذشتیم چه نام داشت؟ برگشتم و نگاه کردم پول یوکا که از آن فقط اسکلتی فلزی به شکل تاق باقی مانده بود هنگام فرارم در روز ششم در مخزن بزرگی که آب آن برای آتش نشانی استفاده میشد، جنازه سه زن تقریباً به افتاده بود به نظر اثر میرسید آب هشتاد درصد از مخزن را پر کرده فکر کردم این بار بدون هیچ نگاهی به مخزن باید رد شوم اما باز هم چشمم به آن افتاد از باسن زنی که به شکم شناور بود رودش به درازای حدود یک متر خارج شده و به قطر ده سانتی متر باد کرده بود روده کمی در هم پیچیده به شکل حلقه شده و بر سطح آب شناور بود و هنگام وزش باد مانند قایق بادبانی به چپار راست می‌لرزید. در آوار سوخته های شهرک معابد، تخته نازکی سرپا شده و روی آن با زغال محل پذیرش جنازه‌های شهرک نکویا نوشته شده بود. به داخل دیوارهای آنجا که نگاه کردم، چیزهایی که به نظر جنازه می رسید، جنازه جنازه‌های نیم سوخته و استخوان شده گوشهای به ارتفاع دو متر بر هم انباشته شده بودند. دیوارها ریخته بود. به هر جا که نگاه می کردم جنازه ها به چشمم می آمدند. بر کوه جنازه ها تا حدی که سیاه به نظر می رسید مگز جمع شده بود. به خاطر باد یا دلیل نامعلوم دیگری مگز ها با صدای وا پریدند و خیلی زود دوباره روی جنازه ها نشستند. همزمان بوی تعفن شدید خفه ای بلند شد که به سرفه هم انداخت نفسم را حبس و با سرعت فرار کردم کمی بعد سرعتم را کم کردم بینیم را با دستمال پوشاندم و راه رفتم اما باز هم بوی تعفن به دنبالم آمد و سرم به دوران افتاد وقتی از بقایای سوخته شهرک معابد خارج شدم بوی تعفون کمی رقیق تر شد اما این حالت زمانی کوتاه بیشتر طول نکشید با زیاد شدن جنازه ها و استخوانها ها کنار جاده باز هم داخل بوی شدید تفون شدم بوی تفون جهنم مکن بود زمانی حس کردم بو رقیق شده که بالای پل آی آی رسیدم و نسیمی از رودخانه وزید احساس راحتی کردم بار پشتم را به نرده های سمت راستکیه دادم و کمی استراحت کردم شهر کامل سوخته بود بنابر این مناظر دور دست هم هم می میشد در سمت جنوب توانستم کوه های وردی شهرک اوکوو را ببینم در جنوب غربی تناکزار بکر درختان کافور موکوجینا درست مقابل آن کوه شومی در میاشیما در غرب تپه ماهورهای ابا و در شرق کوه های ایزدکده تشاگو. دیده میشدند دشت وسیع سوخته فقط چند ساختمان خرابه را نشان میداد و های چوب و تکههای سفال به شکلی بی انتها پخش شده بودند در بعضی جاها نقطههای سیاه یا سفیدی در حال حرکت دیده میشد آنها انسانهایی در جستجوی استخان بودند همه چیز چشم آزار بود پای پل ردی به پشت افتاده و دستهایش را کامل باز کرده بود صورتش سیاه شده بود اما به نظر میرسید، گهگاهی گونه هایش بالا میآیند انگار نفس میکشید. گویا ابروهایش هم حرکت می کردند به چشمان خودم شک کردم بارم را رو روی نرده گذاشتم و با ترس به جنازه نزدیک شدم وقتی نگاه کردم دیدم کرمهای قلطان از دماغ و دهانش بیرون میریزند هدقه هایش هم انباشته از کرم بود وقتی کرم در هم میلولیدند به نظر میرسید ابروهایش حرکت میکنند یک بیت شعر از شاعری به ذهنم رسید شعری که در نوجوانی در مجلهی خوانده بودم ای کرم ای دوستان ما یک بیت دیگر هم به یادم آمد آسمان دریده شو، زمین بسوز، انسان بمیر، بمیر. چه تهیجی است، چه چشمانداز عظیمی. جملات برخورنده بود. دوستان ما کرما حرفی است که انسان مگسی میگوید اصلاً حرفی احمقانه است. در واقع در ساعت 8 15 پانزده دقیقه صبح روز ششم ماه اوت آسمان پاره شد زمین سوخت و انسان مرد. اجازه ندهید چی چشم نازظیم است؟ چی دوست ماست؟ ما آشکارا این را به زبان آوردم. فکر کردم بارم را به رودخانه بیاندازم. جنگ نفرت انگیز است. پیروزی و شکست هر دو خوبند هرچه زودتر تمام شود بهتر است. به هر حال سلح ناسالم از جنگ سالم بهتر است از کنار نرده پل برگشتم بدون اینکه بارم را به رودخانه بیاندازم آن را به پشت کشیدم بار پشتم تنها چیزهای ضروری برای کسی بود که در آوار سوخت زندگی میکرد مانند بطری که در آن قرص سروگان بود بیلچه، مجلات قدیمی، برگ کالیپتوس، نان خوشک باد بزن آغشته به روغن خرمالو و غیره. وقتی تا نزدیک شهرک کامی یا رفتم، افرادی که ماسک زده و به نظر می رسید سرباز هستند، در سه چهار محل جداگان آتش افروخته بودند. نزدیک شدم و نگاه کردم. در حفره مربع شکل، به ابعاد دو متر، تراورس های قدیمی را می و آنها را آتش می زدند. جنازه های هم شده به آنجا را هم درون حفره می انداختند و می سوزند. طرق، صدای سوختن چوبهای قدیمی درون اون ها حیبت و ترس به وجود آورده بود شعله که از تن جنازه ها بلند می نیلی و سفید باریک بود که با شعله های پرقدرت سرخ دورشان احاطه شده و بالا می‌آمدند. سربازها سرباز ها جنازه ها را یکی بعد از دیگری روی لطه در یا صفحه حلبی می آوردند. صورت خود را بر و یک بار آن را در حفره رها می کردند. بعد آرام آنجا را ترک می کردند و می رفتند. چهار گوشه ی صفحه های حلبی را کچ کرده و آن را گرفته بودند. به نظر می مقام ارشدتری آنها را فرماندهی می کند. از ظاهرشان نمی شد فهمید چه احساسی دارند. ظاهراً فقط پوتینهاشان احساسات آنها را نشان میداد که تحت فشار زیادی بودند. وقتی جنازه هایی که به حفره میانداختند زیاد میشد و شعله فروکش میکرد جسد ها را در اطراف حفره روی هم میانداختند آن وقت از دهان جنازه ها کرمها و مایعات حاصل از پوسیدن، با هم بیرون میزدند از جنازه هایی که زیادی به حفره نزدیک بودند حجم عظیمی از کرم که طاقت آتش را نداشتند خارج می شدند. در میانشان کرمهایی بودند که از محل بندهایشان چیزهای غریب بیرون آمده بود. چیزهایی مانند لولاهای نگهدارنده مفاصل پینوکیو در داستان کودکانی پینوکیو. پینوکیو عروسکی بود که با چوب و میخ سر هم شد. اما وقتی ساق پایش به جای خورد، درد را احساس کرد. این جنازه ها در هستیشان بیش از پینوکیو انسان به هیچ وجه نمی توانم این جنازه را حمل کنم سرباز جلویی حامل صفحه حلبی این را گفت و دیگری جواب داد ما در کشوری بدون ملیت به دنیا آمده ایم تنها صدای انسانی که آنجا شنیدم همین جملاتی بود که دو سرباز حامل صفحه فلزی با هم زدند جنازه روی آن صفحه حلبی جمع شده بود انگار تمام لولاهای پینوکیو را کشیده بود یان که فکر کنم و متوجه باشم جملات ها را زمزمه کردم هیروشیما مرده بود اما فکرش را هم نمی با این وضعیت اصفناک بمیره